سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز امروز شنبه آخرین روز ماه آذر سیوم آذر 1392 خورشیدی برابر با 21 دسامبر 2013 میلادی طبق معمول شنبه ها میزبان شما هستیم تا ساعت دوازده امروز شما صدای ما را از رادیو هلبورز شهر آهوس در دانمارک میشنوید که روزای شنبه و یک شنبه از ساعت هشت و سی دقیقه بامداد به وقت دانمارک میزبان شما هموطنانه گرامیستم در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر دادای فرهنگی و اجتماعی خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان خواهیم داشت مجلعه بیداشت و سلامت و مجلعه ورزشی شماره تلفن ما 27 58 22 12 آدرس الکترونیکی ما رادیو at @hotmail.com است. طرنمای اینترنتی ما iraninfo.deco شما آخرین داده‌های خبری رو میتونید از طرنمای iraninfo.deco و iranglobal.info میتونید پیگیری بکنید و همینطور در صفحات فیسبوک رادیو البارز dastpersis میتونید دست رسید داشته باشید به آخرین داده خبری با ما باشید تا ساعت دوازده امروز چشماتو روی من نبان چشمتو زندگی اینه صدای تو به گوش من زیبا تر تنینه با سنگات مینیرم و محتاج آم و حوشتو هم دیبونه بویگنه هر لحظه تن پوشتو هم با سنگات مینیرم و محتاج آم و حوشتو ik wil niet geven, boeiden, haal het dan, hoe is اجتو به خلاصی خبرهای این ساعت رادیو آلبرز جلب میکنم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته جمعه گفت نیازی به اهمال ترمیم جدید علیه ایران نخواهد داشت. اوباما تصریح کرد در زمانی که گفتگاه پیوند ملی با هدف محدود کردن برنامه هستهی ایران جریان دارد تصویب تریمه تازه ضروری نیست بنابرای گزارش خبرگزاری داخلی مذاکرات کارشناسی ایران با گروه پنج به علاوه یک امروز شنبه نیز ادامه خواهد داشت سفیر ایران در روم اعلام کرد که قرار است وزیر خارجه ایتالیا امروز شنبه به تهران سفر کند شیرین عبادی حقوق و برنده جایزه سلح نوبل با انتقاد از منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی آن را غیر ضروری، ناقص و فاقد هر گونه زمانت اجرایی توصیف کرده است رسول عبداللهی نوکیش مسیحی برای گزراندن حکم زندانش به بند 350 زندان اوین منتقل شده است همسر و مادر پیمان آرفی زندانی سیاسی در راه بازگشت از ملاقات وی در تصادف رانندگی جان سپردن حف زندانی بهائی در نامه‌ای به حسن راهانی درباره منشور حقوق شروندی پیشنهاداتی دادند و گفتند اگر این منشور به دقت تدوین نشود یا بدتر از آن اگر عمدن برای ایجاد جدایی تنظیم شود میتواند به وسیله برای تبعیض و تداوم سرکوب شود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که جمهوری اسلامی قدنامی حقوق بشری مجمع سازمان ملر را در مورد ایران قویان رد می کند مجمع عمومی سازمان ملر چهارشنبه گذشته با صدور قدنامی از ادامه نقص جدی حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه و استفاده مستمر و هر آسنجیز از مجازات ادام در ایران ابراز نگرانی کرد. بنا به گزارش هرانا، بامداد روز چهارشنبه 27 آذرماه هشت زندانی با اتهامات نامعلوم در زندان رجایی شهر کرج حلق‌آویژ شدند. خبرگزاری فارس با انتشار تصاویر خبر داد که پنجشنبه از اص... پنجشنبه عصر زنجیره انسانی دیگری در شهر اهواز در اعتراض به انتقال آب رود کارون به مناطق دیگر ایران برگزار شده است شرکت ملی گاز ایران دلیل قطع شدن جریان گاز و افت فشار در جریان انتقال گاز در برخی شهرها و روستاهای آذربایجان غربی را مشکلات فنی اعلام کرد روزنامه زمان چپ ترکیه در شماره روز پنجشنبه خود وزیر اقتصاد ترکیه را به دریافت رشوه از یک تاجر ایرانی متهم کرده است کمیته ی حمایت از روزنامنگاران میگوید در سال جاری 211 روزنامنگار در سراسر دنیا به زندان رفتن که بیشتر اونا مربوط به کشورهای ترکیه، ایران و چین می باشد. سراسر جهان حالتون چطوره شب یلدا چله و سال نو بر شما مبارک باشد خیلی سالها پیش فکر میکردم وقتی کسی را دوست داشتی حتماً باید اون مال تو باشه فکر میکردم هیچ مانهی برای رسیدن نیست اما وقتی مانه ها را شناختم طرز فکرم عوض شد دیگه نمیخوام برای کسی قفس بسازم و اونو تا ابد در قلب خودم نگه دارم شاید داشتن تو بدون قفس آرزویم بود اما برای من همین فرصت کوتاه با تو بودن خودش یک دنیا بود شاید داشتن تو بدون قفس آرزویم بود آرزویی که برایش خیلی چیزهای زندگی را از دست دادم برایش کلی عشق ریختم دل تنگش شدم در قفس ماندم اما باز در این قفس تنگ دوستش داشتم وقتی با آنها فکر میکنم همین برایم یک دنیا بود نمیدانم آرامشت را به هم زدم قلب تو شکندم کاش میتونستم برای همه کارهایی که هرگز نکردم حرفهایی که هرگز نزدم چون امشب شت دلم گرفته است این حرفا رو میزنم نمیدونم باید از تو معذرت بخوام عزیزم منو ببخش عزیزم منو ببخش برای این سالهایی که خالصانه صادقانه دوستت داشتم عزیزم منو ببخش برای این سالهایی که خالصانه و صادقانه دوستت داشتم <تصفيق> شاستم به جانم خاموشم شنو ی ماندم از ناب ناب بانگاهی به راهی که میرهت به کجا ای قلبوشنو بی‌قرارم بیا او یزین قنم سر بذار یه غم نهادم به گوش این شبستم شنو آی آی آی آی امشب شب یلدا است شب چله است شب یلدا اول زمستان دراسترین شب سال است ایرانیان باستان آخر پاییز اول زمستان را شب زایش میر با زایش خورشید میخواند برای آن جشن بزرگی برپا میکردند شب یلدا یا شب چله شب اول و دراسترین شب سال فردای آن با دمیدن خورشید روزها بزرگتر شده و تابش نوری زدی افسونی مییابد این بود که ایرانیان آخر پاییز اول زمستان را شب زایش مهر با زایش خورشید میخوانند برای آن جشن‌های بزرگی برپا می‌کردند این جشن در ماه پارسی دی قرار دارد که نام آفریننده در زمان قبل از زردشتیان بوده است بعد نام آن آفریننده نور شناخته شد همون در زبان انگلیسی دی خانده می شود و پیش از کلمه دی استفاده می شود در کنار هر روز نام هفته البته در اکثر کشورهای جهان این دی بکار می روید یلدا جشنهایی مربوط این در این شبها برگزار می شود یک سنت باستانی یک جشن آریایی و پیروان میسرایسم آن را از هزاران سال پیش برگزار می کردن یلدا روز تولد میترا یا مهر است این جشن به اندازه زمانی که فصول را تعیین می کردند کوهن است نور روز و روشنایی خرشید نشانه آفریدگار در حالی که شب شب و تاریکی و سرما نشانه احریمن بود اما آمدن شب و روز مردم را به این باور رساند که شب و روز یا روشنایی و تاریکی در یک جنگ همیشگی به سر می‌برند. روزها بلندتر، روزهای روشنایی بود و روزهای کوتاه‌تر نشانه ای از غلبه تاریکی بود. برای همین خطر اهریمن در این برای همین از خطر اهریمن در این شب دور هم جمع می می‌شدند و با افروختن آتش از خورشید طلب برکت می‌کردند. از منابع رومی میدونیم که پیران پاکان به تپه می رفتن و با لباس قرمز و مراسمی از آسمان می‌خواستن که آن رهبر بزرگ را برای رستگاری آدمیان بفرستد و نشانه زایش آن ناجی ستاری که بالای کوهی به نام کوه فیروزی که دارای درخت بسیار زیبایی بوده پدیدار می‌شد و معبد بزرگ برای این موضوع دعای خانده قسمتی از آن همکنون در کتاب بهمن است ظاهرن بعد از مسیحی شدن رومیان 300 سال جشن مه را به عنوان زادروز عیسی میپذیرفتند می زیرا موقع تولد او معلوم نبود از آن روز تا به امروز بابا نویل با لباس قرمز کلاه موبدان موبدان سهر می شود و بر روی درخت سر ستاره ای آن است که یادگار مهری هاست یادگا... یادگار یادگار مهری هاست یلدا یک کلمه سوریانی به معنی تولد ابو ریحان بیرونی آن شب را شب زایدن زادن توج... ترجمه کرده است ابو ریحان بیرونی آن شب را شب زادن ترجمه ترجمه کرده است همچنین گفته می شود که وقتی میترایسم در تمدن ایران بوده در جهان گسترش پیدا کرده در روم و بسیاری از کشورهای اروپایی زاد روز میترا روز تولد مسیح جشن گرفته می شود این شبه یلدا از ایران باستان مانده است 600 سال قبل از آمدن مسیحیت 2013 را همیشه به علاوه 600 کنید به آن اضافه کنید که قبل از مسیحیت زردشت به ایران آمد و میتراییسم را باور کرد و بعد اسلام 1347 سال قبل آمده است زردشتیان باور میتراییسم را حفظ کردند، اما برای سر قدرتی که موبدان به دست آوردن باعث عزم بردن این باور ایرانیان شدند. باید مهمیم را ما ایرانیان به خاطر بسپاریم که دین مانی و دین مزدک از سرزمین ما آمده است اروپا از آن به بعد این دو دین را ملاک زندگی خود قرار داد در این شب یلده باید به همه باورهایی که ما را از علم و پیشرفت جهان دور نگه می دارد پرهیز کنیم باعث شادی و آرامش یک باشیم دوره هم جمع شویم اگه ما در این باوریم که جشن مسیح از میسرایی سمه است پس این افتخار خودمان است در این جشنها خودمان را سهیم بدانیم هیچ کس با باور متولد نمی شود. اما با باور خواهد مرد برای همین با رفتن هر کسی نه تنها خودش می رود بلکه باور او هم به پایان می رسد بیاییم در این شب یلدا به هر بحان دور هم باشیم از اینکه اجداد ما انسان‌های با شعوری بودند که چنین شب‌های شادی را برایمون گذاشتن و این شب‌ها را جهانی کردند سپاسگزار باشیم و به روح پاک باکشان درود بفرستیم هندوانوی انار آجیل و آجیل مخصوص شیرینی میوه‌های گوناگون همه نشانی از برکت و تندرستی و فراوانی و شادکامی بوده در شب یلده فال گرفتن از کتاب حافظ رسمی بود که بعدها در مازندران اجرا شد. شکستن گردو از روی پوکی یا پوری آن آینده را پیشگوی می کردن. ایرانیان در شب یلده به وسعت زندگی خود شام را تدارک می بینن. قضای مخصوصی نیست اما هر کسی قضایی را که دوست دارد آن را می پسد و نوشیجان می کند. پس بیاییم برای برکت و تندرستی فراوانی و شادمانی همدیگر دعا کنیم. پس بیاییم برای برکت و تندرستی و فراوانی و شادمانی همدیگر دعا کنیم. شب شب یا 2 یعنی شب 40 است. بعضیا در چنین شب به دنیا اومدن دو تا شادی رو جشن میگیرن. من فیروزه هستم در محل کوچکی در مازندران به دنیا اومدم. 17 سالی که با آقای شکری همکاری دارم آشنایی ما در اتوبوس بود. ایشان از من پرسیدن مقاله‌هایی که من در جوانان می‌نیسم اجازه دارن در رادیو بخونن. بعد ها هم از من دعوت کردن که خودم این مقاله ها رو بخونم. و چون اون موقع من دو تا شغل داشتم ماهی یک بارم شب شهر داشتیم مجبور بودم فقط اونو زبط کنم همکاری خوبی بود من از ایشان بسیار آموختم فائل، فیل، زمیر، مازی رو یاد گرفتم نقطه گذاشتن بعد تمام شدن جمله برای یادگیری بیشتر کامپیوتر شون خیلی به من کمک کردن البته همینجا از آقای تبا... تباییم توایم تشکر میکنم که جنب جلسه در کلاس بودم مهم است که بدونید من واقعا شوکی در یک محل به دنیا اومدیم اما آشنایی ما در آرهوس بوده آقای شکری در ایران لیسانس جامعه شناسی علوم انسانی بودند 16 سال کار فرهنگی کردند و در نازیاباد ناظم مدرسه بودند در مورد نظم و ترتیب و انضباط در کارها، آرامش در مقابل دیگران در برگزاری کارها شخصا کسی رو من تا حالا ندیدم که ایشون اینقدر دقیق هستن. از ایشون تعریف و تمجید کردن خیلی خوششون نمیاد. میگویند که کار ما بسیار کوچک است. هر کس میاید مصاحبه کند، اصلا قبلا باهاش صحبت نمی کنند. درسته ما سالها با هم کار کردیم و دوست خوبی هم هستیم، اما عقاید فکری و سیاسی ما یکی نیست. ما یاد گرفتیم با هر عقایدی میتوان انسان بود. درباره خط زیبایشون چیز نمیگم اما از طرف خودم ازشون تشکر میکنم که تونستیم تونستن با فعالیتشون در این رادیو هموطنان رو دور هم جمع کنند. برای منم این سالا افتخاری بوده از شما به خاطر حمایت، همکاری، تو همکاری شما، همراهی شما سپاسگزاریم. آقای شکری امشب شب چله تولدشونه بهشون تبریک میگم البته فردا 22 اما شب چلهشون به دنیا آمدن آقای شکری عمرتون ست شب یلدا شادیتون قد دریا این شبهای گرم یادتون همیشه با ما خانم فیروزه شما لطف و محبت دارین بنده در مورد مسائل شخصی زیاد مطرح نمی در رادیو از این که لطف کردین محبت کردین بینایت سپاس کذارم و اینکه که شب شبه زنده بونم خیلی زیاد چیز کردین امیدوارم که شما هم سالای سال زنده و شاد و پیروز باشین توجه شما رو به آهنگی در مورد شبیه اللہ جل میکنم در زم بنده هم در ایران ناظم مدرسه نبودم مرسی موسیقی موسیقی بلنده یالدو فرگر یه برای قصه ی فردم مرا دستشابم بلنده یالدو فرگر برای قصه ی فردم فرت اشوی مش سیاهی تو تردید مثل موندان تو دره تو فهم نبودی تموم قربت من بود اون سفر کرده‌ی ما تو همه قسمت ما بود اونم نبودی تموم قربت من بود اون سفر کرده عزیزان منو ببخشید که من کلمه دبیر رو نازم خوندم خیلی ازت و مذارت میخوام مثل که کم کم داره همه چی یادم میره بله به در جهان سال جدید رو دو هزار و چارده است یک سال گذشت چه اتفاقی و حوادثی نمیشود زمان رو ایستاد سانیه ها دقیقه ها ساعت و روزها، ماه ها و سال ها میایند و با آغاز آن جهان غرق شادی می‌شود. شود. روز 24 آغاز این شادی هاست. این شادی ها اکثر در خانه‌ها و گردهمایی خانوادگی مراسم زیبایی است. همه هم در خانه خود شادند. مهم نیست که بسیاری از کلیس کاتولیک روم و پیروان آین پروتستان در 25 دسامبر رو جشت می گیرند. بعضی هم در شامبای 24 دسام بعضی ها از ارکتوس ها روسیه اوکراین در ماه هفته ماه جانویه برپا می کنند. اعضای کلیسای های ارامنه هم روز ششم به ماه جانویه روز میلاد می دانند. قسل تعمید هم در روز ششم انجام می دهند. پس جشن میلاد زادروز روز از 24 تا هفت ادامه دارد. هفته ماه جانویه ادامه دارد. یعنی 13 روز در شادی، اما بعضی از کشورها ها مسیرا مسیح پاک می دونن یعنی سلیب کشیدن مسیح این جشن مذهبی است. جشن کریسمس فرصتی است برای هم دو هم بودن خانواده اقوام دوستان هدیه دادن. کریسمس آین ویجه است به طور مثال یه درخت کاج تز این شده از شراخهای رنگی بابا نویل با لباسهای مختلف. مختلف برای خوشحالی کودکان شخصیت خیالی، تاریخچه بابا نوئل رو براتون قبلا گفتم یکی از اسقف‌های مسیحی کلیسایی در آسیای صغیر ترکیه امروز کلیسایی بوده که کشیشی به نام پدر نیکولاس که بسیارم به اهالی کمک می‌کرده کودکان او را بسیار دوست داشتند به خاطر کوشش او بود که شب میلاد همه اهالی کوچک اون روستا سر میزشان چیزی داشتند برای خوردن و شادی کردن برای کودکان هدیه می‌بردند بعدها که کمی شهر بزرگتر محل بزرگتر شد خالی کمک می‌کردند بعدها شهر شد و او دیگر نمیتونست کارهایی رو انجام بده بعدهایی که از دنیا رفت او را در گوشه‌ای از کلیسا به خاک سپردن اما کلیسای واتیکان در این باور بود که او مقدس است نغش قبر کردن و او را به ایتالیا بردند و به نام سان نیکولاس در نزدیکی واتیکان به خاک سپاردن امروز بسیاری از جهان برای زیارت می روند مردی که رفتارش با کودکان مهربانانه بود البته بردن جنازه او چند قرن بد صورت گرفت چرا که واتیکان می گفت در یک کشور مسلمان نباید یه مسیح مقدس باشد لباس قرمز از باورهای میسرائیسم است درست از تولد مصرا بزرگان لباس قرمز می پشیدند. در اون زمان ریش بلند داشتند. این لباس بهترا به مبادن زرد و از تقلید مبادن به مسیحیان رسید. درخت سر و همون کاجی است که می بینید در آینهای پاکان و در آینی به نام پاکان و فرهنگ قدیم ایران نیست بسیار بوده. به آن درخت جاودانگی میگفتند امروز در بسیاری از نخ... نقاط ایران درخت سرو را با نگاه تقدس به آن نگاه می کنن. درخت سرو سرو کاشمر سرو کاشمر و بریدن آن به دستور خلیفه عباسی که از مطالب تاریخی است که مورد تقدس ایرانیان است در گذشته در آسی آسیای میانه به روی درختار صرف یه تک پارچی کوچک گره میزدن تا مشکلات آنها گشوده شود پس میبینید که همه در باور انسان ها هست با باور نمیتوان جنگید اما میتوان با باورها زندگی را شادتر و زیباتر انجام داد همه باورها از مغز انسان‌های های باخرد و اندیشه نمی آید امروز ما در قرنی با در قرار نیست اینکه باید با دید باورها رو با پیشرفت جهان برابر بدانیم تا زمانی که باور کسی باور دیگری را مورد آزار و عذیت قرار ندار می توانیم همه با باورهای هم روزگار بگذرانیم در کنار هم با شادی و مهربانی و دوستی زندگی کوتاه و عمر را سپری کنیم در کشور های کریسمس به خوردن شام, م... شام و مشروبات را می نوشند. اردک و مرغابی از غذای اصلی آنهاست. شرنی انوای تنقلات، میوه و نوشیدنی ها، گردهمایی دوست و اقوام و هدیه دادن. این شب ها خانواده ها دوره هم جمع می شند. با زندگی مدرن بحران های اقتصادی و مالی می توان تغییراتی هم در آن دید. مهم نیست که صفر بزرگتر است یا کوچکتر اما قلب‌ها یکسان است بیایم بیاییم با هم در این روزها برای همه مردم جهان سلح و دوستی آرزو کنیم با باور باور دیگران و باور خود احترام بگذاریم شب خوبی در این شب براتون آرزو مندم به هموطان که با باور مسیحی خودمون زندگی می می‌کنن تبریک عرض ارز می‌کنیم آرزو می کنیم که زندگی بهتر از این داشته باشن برای همه مردم جهان صلح و آرامش و دوستی آرزومندیم ما ملت ایران زیادخوار نیستیم با سفره اندک هم دل اما بیشتر از سفره اندک خودمون شادی و تندرستی و سلامتی را خواستاریم با توضیحاتی که دادم امیدوارم که مرزها رو از روی قلبتون رد و دوستی خود را محکم‌تر کنید تا شب‌های خوشی داشته باشید. اومدیم که با باورها زندگی کنیم یا این که این باورها هه از یک از هزار دلیلی است که ما را به هم نزدیک کند راستی باور و اعتقاد ایمان از کجا ریشه می‌گیرد؟ از بیرون به درون یا از درون به بیرون؟ مثالی براتون میزنم مفهوم خودم رو برسونم مثالی که مادر بزرگ میگفت ما ایرانی عادت کردیم با مثال به نتیجه که باید میرسیم در قدیم مردی بود که احساس میکرد چش... چشمش کم نور شده میره پیش مومن محل با او در درمیان میذارد مومن محل میگه که اگر بری چند شبانه روز راه دور اون موقع که مثل حالا ماشین و آخری مودل و یا جاده نبود به یک چشمه میرسی آنجا آب مقدس است اگر آب را بنوشی، نور چشمانت برخواهد گشت بیچاره مدرف از جنگل‌ها گذشت سختی‌ها کشید تا به چشمه مقدس رسید از خوشحالی اولین کاری که کرد آب چشمه را نوشید و دوباره به دیار خود برگشت اما بعد از چندی چشمانش کر شد دوباره نزد مرد مومن رفت و گفت من آب چشمه را نوشیدم نه تنها نور نیامد بلکه آن نور زره را هم از دست دادم مرد مومن گفت با کدوم دستت آب را نوشیدی؟ گفت با دست راست گفت نه باید آب مقدس را با دست چپ می نوشیدی مرد گفت باید دوباره برگردم مرد مومن گفت اگر نور چشمت را می خواهی باید رنج را سفر را به خود بدهی مرد می که این سفر چقدر پرخطر است و ممکن است او هرگز بر نگردد مرد کور داشت رد می شد تناش به کسی خورد از او پرسید تو که من نور در چشم ندارم او گفت من آب می فروشم مرد کور تمام ماجره را برای آفروش تعریف کرد آفروش گفت من مثالی برایت دارم شاید تو متوجه بشی. او گفت در محلی در محل کوچکی 80 زن و 80 زن و 80 مرد 80 ساله را انتخاب کردند مرشدی بود مرشدی که باور او با باور مرد مامن یکی نبود مرشد به آنها گفت چند وقت باید تمرین کنید به آنها آموخ که شما 40 ساله هستید گفته که گفته شما 80 ساله اید جزیره کوچکی را مرشد انتخاب کرد و تمام وسایلی که در آن جزیره بود به سبک 40 سال قبل قبل از این که آدم ها ساله شده بودن به وسایلی مثل درخت به 40 سال قبل برگشت این صد شست زن و مرد را به آنجا برد و به آنها گفت شما اشتباهی به سیارهی سیاره رفته بودید آنها را به جزیره آورد موهایشان از سفیدی به سیاهی رفت دندانهایشان برگشت آشق هم دیگر شدن از زندگی لذت بردن اینها در باور آنها بود و این انسانها زندگی و روال زندگی خود را داشتند. این باور آنها بود معفقیتی کوتاهی بود برای هر کدوم که به همراه داشت اگر کسی فکر می کند که سروف من می شود حتما به ثروت میرسد باورها با عقیده ها اندیشه هایی هستند که به حقانیت آن اعتقاد دارند باورها و عقیده ها و اندیشه هایی هستند که افراد به حقانیت آن اعتقاد دارند مذهب از همین باورها سرچشمه گرفته چرا من مسیحی نیستم به خاطر اینکه از باورها بعضی از باورهای مسیحیت را قبول ندارم چرا یک مسیحی مسلمان نیست برای اینکه بعضی از باورهای مسلمانان را قبول ندارد مسیحیان میگویند آدم و حواسی خوردن گناهکار شدن از اون به بعد هر کس به روی زمین گناهکار است به خاطر این است که عیسی مسیح گناه آنها را پاک نکرد کسانی هستند که به او اعتقاد ندارند که گناهان آنها پاک نمی شود یا موقعی که عیسی مسیح داشتن شام می‌خوردند با یورش کردن ایشان نون را به افراد داد تا به شکر بزنند تا امروز نون و شراب از باورهای گوشت و خون خون استی که ساخته می شود پس بدونیم همه ادیان از باور اعتقادات شماست نظرهای بسیاری در این مورد وجود دارد اما ما ما من باور دارم تو باور داری او باور دارد و باور چیزی داشتن است داشتن چیزی به باور است آنچه در باور هاست کسی تواند آن را نفر کند چرا که آن آن را باور کردیم آن مرد هم باور کرد که باید با دست چپ آب بخورد تا بینایش را به دست آورد آن مرد باور کرده که آب آب رو با دست راست خورده آن مرد باور کرده که اگر با دست چپ آب را می‌خورد بینایی اش را به دست می‌آورد آن مردم باور کرد که اگر آب را اشتباه خورده اگر با دست چپ میخورد بینایش میامد و آن مرد آب فروش هم برای نقیده بود که نمیخوایی لیوان از آب گبارای من بخوری شاید دوباره بیناییت را به دست آوری باور انسان در رفتارهای او تجلی یابد آیا همه کسانی که دور اطراف شما هستن به ادیان شما معتقدند؟ یا چیزی را پذیرفتند چیزی را پذیرفتند به نام باور آیا ظاهر با نا... باطنان ها یکیست؟ آیا آن چه میگویند؟ آن چه هست که میپندارند؟ بله من از باورهای مردم جهان ارقام تحییه کردم که براتون میخونم بعد از اینکه موزیک گوش دادید تا بدونید اگر قرار باشه باورها ما را به حق برساند باید هر روز شمشیر به دست بگیریم و همدیگر را به خاطر باورهای همدیگر بکشیم. آن چیزی که امروز باورها می تواند ما را دور هم جمع کند و شب شادی را برای ما بسازد. مدد فرماید نوبت چل چلیه ماست اگر بگذارند نوبتی باشد اگر گردش این چرخ و فلک نوبت گردش میناست اگر بگذارند مدد فرماید نوبت چلچلی ماست اگر بگذارند نوبتی باشد اگر گردش این چرخ و فلک نوبت گردش میناست اگر بگذارند اگر بگذارند دین و آین کیش جهان آیینو کیش جهان بینی و مزمونی از باورهاست که میکوشند توضیح برای رشته از پرسش‌های اساسی مانند چگونگی پدید آمدن آن اشیاء جانداران آغاز و پایان احتمالی چیزها چگونه زیستند ارائه دهند همه ادیان فراعقلی‌اند بخشای در آن مستقل از عقل بر مبنای عشق و اعتقاد شمار دین در میان انسان ها بسیار هست و این عدیان توضیحات و داستان های پرشماری را در راه کوشش برای یافتن پاسخ به معمه یاد شده را مطرح می کنند در باور دینداران موجود یا موجوداتی که فراتر از قوانین جاری طبیعت هستن این جهان را آفریده بران فرمان روایی می کنند انسان می تواند از راه پرسش کردن از آنان از واکنش آن موجود یا آن موجود استفاده نماید و به درجه‌ای از حس امنیت و آرامش برسد. این موجود آفریننده مورد نظر عدیان خصوصیاتی دارد. تعداد و صفاد اهداف آنها و طول و عمر عباد و شمار و شمار پیاموران آن و چه تعداد و اندازه در میان عدیان اختلاف نظرهای بسیار است؟ اما همه ادیان از دو بخش تشکیل شده آموزه ها و گزاره‌های اعتقادی هستند ها اصول هستهای اصولی دستورهای علمی اخلاقی ارزشهایی که بر پایه‌ی آموزچه‌های اعتقادی استوار هست در ادیان مختلف این آموزه‌های اعتقادی تلاش می‌کنند تا پاسخی برای درک معماهای هستی و آنچه چه درک نشودنی بی نهایت مرگ فراهم کنند. واجه های دیگر ماندی کیش، مذهب گاه به همون معنی دیدگاه به معنی زیر شاخه یک دین به کار می روند دین آسمانیست یعنی حاصل افکار و اقاید یک انسان می باشد که پیامبری آمده مدعیست که از طرف خداوند می باشد دینه های جهان می تواند از دین ابراهیمی همه ریشه گرفته باشد در خاور میانه اسلام، مسیحیت، یهودیت، دینهای بابی و بهایی نیست از این دست آیین نوین هستند و, همه و دینهای دیگری میتوان بوداگرایی البته دینهای بزرگ دیگری میتوان بوداگرایی، هندوگرایی، کنفیسیوس، نام برد همه عدیان خدا مهور نیستند اما همه به ما و طبیعت معتقدند. دینه های کوهن هم وجود دارند زرتشتی، مانیگری و مهر پرستی. دین چیست؟ دین عبارت از دستهی، همبستر از باورها، اعمال مربوط به عمر لاهوتی، مجزا از عمر ناسوتی، این عقیده است که پیروه عدیان هستند و در یک اجتماع اخلاقی واحد به نام امت متحد می شون. شاید معنی کاملی نباشد، دین واجه فارسیست در عوستا به نام دعا آمده در معنی عوستایی دعا به معنی نیروی ایزدی با شناسی نیک از بد گزاره شده است. در معنی دین معنی فراوان تفسیرهای فراوان است وارد آن بحث نمی شویم. اما آمار و شمار پیروان عدیان را به توجه کنید. مسیحیت دو میلیون و یک میلیارد دو دو میلیارد و یک هندوز نوستت میلیون نفر بودایی سی ست افتاد میلیون عدیان غیر بومی آفریقا سی میلیون عدیان بومی آفریقا ست میلیون سیکا که میلیون به آیت میلیون کنفیسیوس که چند شاخه هست در چین چار میلیون و دو چهار میلیون و دو شینیوم چهار میلیون کودای چار میلیون زردوش دو میلیون و شیش تنری کوبو دو میلیون بودپرستی نوین یک میلیون نوینارین هیستد میلیون راستای فاری شیستد میلیون سانی نت لوژی پونست میلیون و ادیان دیگه هم یک میلیون و, و پنج هزار نفر I'm a در جهام خودشونو بی دین مرفی کردن این یک آمار دولتی نیست یه آماری است که غیر دولتی تهیه شده در استوانی 75 ممعیز 7 درصد مردم بی دین هستن جمهوری آزربایی 74 درصد آلبانی 60 درصد چین 59 تا 93 درصد جمهوری چک 59 درصد 8 درصد هم انتخاب نکردن ژاپن پنجاییک ممیز هشت روسیه چله هشت یک بلاروس چله هفت هشت سوئد 46 تا 85 درصد ویتنام چله شیش ممیز یک هولند چله درصد مجارستان چله دو ممیز 6. اوکراین چله دو ممیز چار لاتوها چل ممیز شیش جنوبی سی و شیش ممیز چار برجیک سیا زولاند نو سی و چار هفت و بقیه پاسخی ندادم شیلی سی سه و هشت آلمان سی و دو و هفت لکزانبورگ سی و نو ممیز نو اسلوانی اسلوانی نو ممیز نو، سی هفت ممیز دو بعد میکسیک سی ممیز پنج لیتفانی نوزده ممیز چار دانمارک نوزده استرالیا هیچده ممیز هفت بعضی هم دلخواه جواب دادن آمریکا پونزده بعضی هم به دلخواه جواب دادن که پنجا ممعیز بیسته هش خانوار در چله هشت ایالت بوده کرواسی سیزده ممعیز دو فلان یازده ممعیز هفت پرتغال یازده ممعیز چهار پرتوریکو یازده ممعیز یک فیلیپین ده ممعیز نو ترکیه ده و نیم هند شیش ممعیز شیش ترکیه ده ممایز پنج، هند شش ممایز شش، سربرستان پنج ممایز هشت، لاهستان چار ممایز سه، یونان 4، رومانی دو ممایز چار، تنزانیا یک ممایز هف، مالتای یک ممایز سه، ایران خدا باوری و ندانم ندانم گرایی در آن مملوست، اجازه ندادن که از این آمار بردارند. اوگاندا 1 ممعیز 1 نیجریه 0 ممعیز 7 بنگالاندش 0 ممعیز 1 کشورهایی که دین رو باور نداشتند باور نداشتن، و کشورهایی که دین رو باور داشتند بنگالاندش کمترین و بی کمترین بوده که فقط 0 ممعیز 1 درصد مردم به دین اعتقاد ندارند اما در استوانی 75 ممعیز 7 درصد مردم بی دین هستند البته آمار آنچه بر کاغذ می روید هست بلکه این آمار پجوهش که در جهان تحیه شده این یک آمار دولتی نیست مربوط می شود به, دو... به آمارهای غیر دولتی حالا در ایران ما در کجا قرار داریم در آینده مشخص شا... خواهد شد چرا اجازه ندادند که در ایران آمارگیری نشان دهد در یک کشور که مذهب وجود دارد اما مذهب در باور آنهاست اما ظاهر و باطن آنها با هم فرق دارد امیدوارم روزی که مسئله همه به دست فراموشی سپرده شود سلامی دوباره حضور شما همراهان گرامی توجهد شما را به نخست خبرهایی در رابطه با ایران جلب میکنم بارک اوباما رئیش اموری آمریکا روز گذشته جمعه گفت نیازی به اعمال تحریم جدید علیه ایران نداره اوباما تصریح کرد در زمانی که گفتگوهای بینولملالی با هدف معدود کردن برنامه حسی ایران جریان دارد. تصویب تریمای تازه ضروری نیست. وی گفت برخی از نمایندگان ممکن است با متشکر کردن سخیری بیشتر در فکر پیشرفت سیاسی باشند، اما دیپلماسی با ایران باید کاملا ازمای شود. بارک اوباما در حالی این سخنان را تکرار می کند که روز پنشنبه گذشته بیست و سناتور کنگره آمریکا اعلام کردند که تر تریمای تازه را در دست دارند که آماده است در صورت شکست توافق جنو و یا نقض مفاددان از سوی ایران تصویب و به اجرا گذاشته می شود روز پنشنبه کاخ سفید در واکنش به این اقدام اعلام کرد در صورت تصویب هر گونه تحریم تازه علیه ایران، رئیس جمهور اوباما آن را وتو خواهد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری داخلی ایران، مذاکرات کارشناسی ایران با گروه 5 به علاوه یک امروز شنبه نیز ادامه می‌یابد. هدف از برگزاری مذاکرات که از شامگاه پنج شنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده تعیین سازوکارها و نوعه اجرای توافقنامه ژنو است ریاست هیئت مذاکره کننده ای ایرانی بر عهده حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه است و کارشناسان مالی و بانکی نیز در این مذاکرات حضور دارند سفیر ایران در روم اعلام کرد که قرار است وزیر خارجه ایتالیا امروز شنبه به تهران سفر کند. به گزارش خبرگزاری مر جهان بخش مظفری گفت که وزیر خارجه ایتالیا در سفر دوروزه خود با رئیس جمهور وزیر امور خارجه و رئیس مجلس ایران دیدار خواهد کرد. بر اساس این گزارش ایتالیا اولین شریک تجاری ایران تا پیش از اعمال تحریم‌های علیه برنامه اتمی ایران بود. ارتش ایران در نخستین روز رزمایشی در خلیج فارس روز گذشته جامعه شماری از هواپیماهای جنگنده خودشو مورد آزمایش قرار داد. بنابر گزارش خبرگزاری مهر در اولین روز مرحله اصلی این رزمایش سامانه ارتقا یافته یک جنگنده ساخت داخل ایران موسوم به سائقه مورد آزمایش و تست عملیاتی قرار گرفت. بنابراین به این گزارش سامانای رزمی راداری و الکترونیکی جنگنده هواپیمای جدید تحت عنوان سایقه توسط گفته میشه متخصصان دانشگاهی سنتی و با پشتیبانی صنایع وزارت دفاع جمهوری اسلامی ارتقا یافت است. همچنین در این روز یعنی روز گذشته هواپیمای جنگنده اف 14، اف 5، سوخوی 24، سوخوی 25 و میراج، و همچنین جنگنده های دیگر آزمایه شدن شیرین عبادی حقوق و برنده جایزه نوبل سل سال 2003 میلادی با انتقاد از منشور حقوق شهرفندی دولت حسن روحانی آن را غیر ضروری، ناقص و فاقد هر گونه زمانت اجرایی توصیف کرد خانم عبادی، در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است شکل کامل‌تر این منشور در فصل حقوق ملت در قانون اساسی ایران آمده است که جمهوری باید اصول فراموش شده‌ی آن را اجرا کند. شیرین عبادی، نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی و مواردی از جمله احترام به آزادی بیان را از مهمترین وظائف حسن راهانی دانست محمدعلی نجفی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی روز گذشته جمعه گفت میراث فرهنگی ایران در مرز تخریب و گائی تعدی قرار دارد به گزارش ایرنا محمدعلی جعفری با اشاره به وضعیت نابسامان صنایع دستی ایران در 30 سال گذشته گفت بخش عمده‌ای از بازارهای داخلی آگانه یا ناگانه نا صنایع دستی کشورهای هند و چین را با کیفیت خیلی پایین عرضه می‌کنند رئیس سازمان میراث فرهنگی در ادامه به اوضاع صنعت گردشگری پرداخت و گفت سهم ایران از صنعت یک میلیارد و 35 میلیون نفری گردشگری جهان در سال گذشته چهار میلیون نفر بوده است رسول عبداللهی نوکیش مسیحی برای گزراندن حکم زندانش در آستانه سال نو مسیحی به بند 350 زندان اوین منتقل شد نزدیکان این نوکیش مسیحی در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کردند. رسول عبداللهی به تام اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ دین مسیحیت در دادگاه تهران به سه سال زندان محکوم شد و دیمای سال 1389 خورشیدی به همراه تعداد دیگری از مسیحیان در مراسم مربوط به کریسمس توسط نیرای امنیتی بازداشت و پس از سه, سه ماه به طور موقت از زندان آزاد شده بود همسر و مادر پیمان عارفی زندانی سیاسی در راه بازگشت از ملاقات به متاسفانه در تصادف رانندگی جان سپردند به گزارش سایت های اجتماعی ایران همسر و مادر پیمان عارفی زندانی تعویض شده به شهر مسجد سلیمان در راه بازگشت از ملاقات این زندانی سیاسی در تصادف رانندگی در جاده اهواز به تهران جان باختند. همسر و مادر پیمان عارفی ساکن تهران بودند و هر بار برای ملاقات با او ناچار به سفری طولانی به مسجد سریمان می شدن امیر رزا یا پیمان عارفی و همسر او زیبا صادق زاده دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری 88 به اتام هواداری از تشکل به نام انجمن پادشاهی بازداشت شدند اما پیمان عارفی در دادگاه دست جمعی پس از انتخابات به عنوان اخلالگر در انتخابات و قصد انجام اقدامات مسلحانه به اعدام محکوم شد ولی حکمش در دادگاه تجدید نظر به 15 سال زندان در تبعید کاهش یافت در رابطه با منشور حقوق شهروندی حسن روحانی، حف زندانی بهایی در نامه‌ای به حسن روحانی درباره منشور حقوق شهروندی پیشنهادهایی را دادند و گفتند که اگر این منشور به دقت تدوین نشود یا بدتر از آن اگر عمدن برای ایجاد جدایی تنظیم شود، میتواند به وسیله برای تبعیض و تداوم سرکوب تبدیل شود امزه کنندگاه نفسودن آن چه اهمیت اساسی دارد بازبینی در برنامه آموزش و پرورش برای, برای ایجاد فرهنگی پیشرو و بر اساس اصولی بنیادین مانند کرامت انسانی و تساوی شهروندان در برابر قانون هست این افراد که عموما این افراد از جمله آقای بهروز توکلی، محوش ثابت، جمالالدین خانجانی، سعید رضایی، فریبا کمال کمال‌آبادی و عفیف نعیمی به تام اقدام علیه امنیت ملی 5 سال پیش به 20 سال زندان محکوم شده بودند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که جمهوری اسلامی ایران قاتنامه حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل متحد متحدو در مورد ایران قویان رد میکنه. مجمع عمومی سازمان ملل چارشنبه گذشته با صدور قاتنامه ای از ادامه نقض جدی حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه و استفاده مستمر و حراستگیز از مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد بنا به گزارش خبرگزاری مهر مرضیه افخم روز پنجشنبه گفت که جمهوری اسلامی از اینکه سازوکاره ها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل دستاویزی سیاست‌بازی قرار می‌گیرد شدیداً متاسف است قدنامه سازمان ملل با 86 رأی موافق در برابر 36 رأی مخالف و 61 رأی ممتنع تصویب شد. بنا به گزارش هرانا، تارنما تارنمای مجموعی فعالان حقوق بشر در ایران، بامداد روز چهارشنبه گذشته 27 آذرماه هشت زندانی با اتهامات نامعلوم در زندان رجایی شهر کرج حلق‌آوی شدن بنابراین گزارش برخی از این زندانیان از زندان غزلحسار برای اجرای حکم به این زندان منتقل شدند و چند تن دیگر از بندای پنج، دو و هفته زندان رجای شهر بودن حویت این هچ نفر هنوز روشن نیست و مسئولان غذایی نیست در مورد این اعدامه اطلاع رسانی نکردن شمار اعدامه در ایران در سالها و به ویژه ماه های آخیر کم سابقه یافته است در قدنامه مجمع اومی سازهان ملل در مورد نقض اوقع بشر در ایران که چارشنبه به تصویب رسید از افزایش اعدام در ایران ابراز نگرانی شده اما آیتلا صادق لاری رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی چند روز پیش اعدام را جزء حکام اسلام دانست و گفت هر کس که با اعدام مخالف باشد با احکام اسلام مخالف است. خبرگزاری فارس با انتشار تصاویری خبر داد که پنج شنبه گذشته زنجیره انسانی دیگری در شهر اهواز در اعتراض به انتقال آب رود کارون به مناطق دیگر ایران برگزار شده است. این خبرگزاری به تعداد شرکت کنندگان در زنجیره انسانی اشاره‌ای نکرد اما سایت‌های محلی تعداد شرکت کنندگان را هزاران تن برآورد کردند. پیشتر نیز چند زنجیره انسانی دیگر در اعتراض به انتقال سرشاخه های رود کارون به مناطق دیگر از جمله استان اصفهان و آلودگی هوای استان خوزستان برگزار شده بود. شرکت ملی گاز ایران دلیل کاهش دادن جریان گاز و افت فشار در جریان انتقال گاز در برخی شهرها و روزده‌های آذربایجان غربی را مشکلات فنی اعلام کرد. خبرنگاری مهر با اشاره به کاهش دمای هوا در اکثر استانهای کشور گزارش میدهد که در طول 48 سال گذشته جریان گاز برخی از شهرها و استانهای غرب کشور و به ویژه در استان آذربایجان غربی، قط و یا با افت فشار شدید همراه شده است. علاوه بر این در طول هفته جاری به دلیل کمبود گاز طبیعی، گازرسانی به برخی از صنایع همچون کارخانه‌های سیمان و نیروگاه‌های برق به طور کامل متوقف و یا به حداقل کاهش یافته است و روزنامه تودی ایز زمان چپ ترکیه در شماره روز پنجشنبه خود وزیر اقتصاد ترکیه را به دریافت رشوه از یک تاجر ایرانی مطمئن شد. به بر اساس این گزارش، وزیر اقتصاد ترکیه بیش از 50 میلیون دلار از رضا زراب، تاجر ایرانی رشوه دریافت کرده تا در پولشویی و قاچاق تلا به او کمک کند. خبرگزاری بین‌المللی روز پنجشنبه از بازداشت بیش از 50 تن از بازرگانان و مقامات دولتی ترکیه از جمله رئیس پلیس استانبول و فرزندان 3 از وزیران دولت ترکیه به اتهام فساد مالی خبر دادند. رضا زررا بازرگان ایرانی دارای تابعیت ترکیه نیز در میان بازداشت‌شدگان این پرونده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه می‌گوید هدف از این بازداشت‌ها لطم زدن به حیثیت دولت اوستان در شما ایرانیان مقیم دانمارک از شما شنوندگان دمت می به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. پارلمان دانمارک با اعزام کشتی به سوریه موافقت کرد. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از سازمان‌های محلی، نمایندگان مجلس دانمارک با اعزام دو فروند کشتی باری و جنگی به سوریه برای انتقال سلاح‌های شیمیایی این کشور موافقت کردند. پارلمان دانمارک روز گذشته با 97 رأی موافق در برابر 14 رأی مخالف طاهر اعظام کشتی به سویه را تسریب کرد افسایشه شمار پناهجویان در دانمارک در سال جاری اداره امور خارجیان دانمارک روز پنجشنبه 19 دسامبر 2013 گزارش سالیانه مربوط به آمار متقاضیان پناهندگی در دانمارک در سال 2013 را منتشر نمود بر اساس این گزارش 7500 نفر پناهجو در دانمارک متقاضی پناهندگی بودند بین ترتیب شمار پناهجویان در دامار در سال 2013 نسبت به سال قبل افزایش زیادی را نشان می دهد. با در نظر گرفتن انبوه قبولی پناهندگی در مجموع 2831 پناهجو در سال 2013 موفق به کسب پناهندگی یا دریافت اقامت به دلیل انسانی در دامار شدند. قتل پسر 4 ساله به دست مادر در شهر آلبرگ دامار. فیسبوک اند دانسپورسیس به نقل از طارمای محلی با دستگیری زنی به اتهام قتل کودک 4 ساله‌اش در آلبرگ بررسی کارشناسان پزشکی قانونی برای مشخص شدن سلامت روانی این زن آغاز شده است صبح 17 دسامبر زنی با حضور در اداره پلیس آلبرگ به قتل کودک 4 ساله‌اش در بعد از ظهر دوشنبه توسط خودش خبر داد در پی دریافت این خبر، پلیس آلبورگ به خانه وی شد و با جسد پسر چهارساله در میان یک پتو روبرو شدند. جسد به پزشک قانونی انتقال یافت و مادر کودک در بخش رباب پزشکی بستری شد. تا تحقیقات در مورد قتل پسر چار ساله آغاز شد. به گزارش تارمای مهدی، این مادر سی و پنج ساله کارمند بیمارستان آلبورگ می باشد و به همراه پسر چهارسالهش در یک آپارتمان در آلبوج زندگی می پسر پدر این پسر بچه به تنهایی در کپنهاگ زندگی می کند این زن در بازجوی خود به قصد پسر چهار سالش اعتراف کرد حزب مردم دانمارک علیه قانون اعطای تابعیت به مهاجران مسلمان دانمارک اعتراض کردند حزب مردم دانمارک علیه قانون اعطای تابعیت به مهاجران مسلمان اعتراض و اعلام کردند هیچ مسلمانی در این کشور مورد استقبال قرار نمی گیرد روز گذشته کیسیان لانگبر عضو جناح راست دانمارک به کوبنهاکن گفت ما معتقدیم که پیش از حد به بسیاری از مسلمانان و مهاجران کشورهای اسلامی تابعیت دانمارک اعطا شده است با توجه به قانون تابعیت دانمارک انتظار می‌رود در این هفته به 1600 نفر تابعیت این کشور اعطا شود که از این تعداد 422 نفر از کشورهای عراق و افغانستان هستند حزب راست افرادی دانمارک به شدت با اعطای به این افراد مخالف است اگرچه تمامی این 422 نفر اقدامات لازم برای دریافت تابعیت این کشور را به انجام رساندند اما با این حال اعضای حزب راست افراطی سرسختانه با اتحاد تابعیت به مهاجران مسلمان اعتراض و به معارزه می پردازند. اگر حزب راست افراطی در این مبارزه به موفقیت دستیابد، قانون تابعیت دانمارک در این زمینه اصلاح شود، این کشور به هیچ یک از مهاجران کشورهای اسلامی و غیر قاربی دیگر تابعیت اعتیاد نخواهد کرد. افزایش بهای بیلیت قطر در دانمارک. بهای بیلیت قطار در دانمارک افزایش خواهد یافت. دلیل این امر افزایش عوارض استفاده از خطوط آهن به میزان دو برابر توسط دولت است. از تاریخ 19 ژانویه سال 2014، راه آهن دانمارک (DSB) بی بهای بیلیت استاندارد را بر اساس میزان نامه سالیانه افزایش خواهد داد. اعتراض به فروشگاه فوتکس دانمارک از استقبال کم رنگ دکوراسیون کریسمس در این فروشگاه فیسبوک دنس برسیس به نقل از روزنامه اکسترابلده دامارک هزاران تن از مردم دامارک در اعتراض به سیاست های فروشگاه فوتکس دامارک که در چهار شوب عدم استقبال از دکورسونی کریسم در این فروشگاه توسط مدیران در ماه دسامبر در صفحه فیسبوک فروشگاه فوتکس اعتراض خود را اعلام کردند به گزارش تاهمای محلی برخی از کاربران دامارکی که معتقد بودند به خاطر مسلمانان فروشگاه فوتکس دانمارک از استقبال کم رنگ دکوراسیون کریسمس استقبال کرده است با الفاظی تن به صفحه فیسبوک این فروشگاه حمله کردند نخست وزیر انگلیس از همتای خود نخست وزیر دانمارک خواست اکس جنجالیش را به هراج هر بگذارد فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تانمای محلی نخست وزیر انگلیس از همتای دانمارکی اش خواست تا اکسی را که با رئیس جمهور آمریکا در مراسم یادبود ماندلا دارند حذف نکند و آن را برای خیریه به هراج هر بگذارد به گزارش روزنامه مترو تصویری که هیل تورینگ اشمیت وزیر دانمارک در مراسم یاد بود نسر ماندلا رهبر زده آپارتای آفریقای جنوبی از خودش در کنار همتای انگلیسیش دیوید کمران باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گرفت جنجال زیادی در رسانه به پا کرد در همین راستا روزنامه مترو گزارش داد کمران در یک گفتگوی خصوصی تلاش کرد تا هیلت تورینگ اشمی نخستوزی داماگ را به فروش این عکس ترقیب کند اعتیاد به مشروبات الکلی در سال خوردیگی در دامار گیلاس شامپاین برای سرگرمی استکانی عرق برای آرامش مده یا لیوانی آبجو برای خواب بهتر اینها غالبا انگیزه و توجهات سالمندان برای نوشیدنی مشروبات الکلی است که به سرعت می توانند با خطر اعتیاد همراه شود در آخرین گزارش دولت دانمارک در تاریخ 15 ماه دسامبر 2013 منتشر شده آمده است مصرف الکل و زیاده روی آن در افرادی که در سنین بالا هستند عموما نادرتر از جوانان است ولی همین گزارش می‌افساید باید انتظار داشت بعد پای تحولات جمعیتی شمار سالخوردگانی که متعاد به الکل هستند افزایش یابد دانمارکی‌ها همواره بیشتر آن می‌کنند و به موازات آن مصرف الکل نیز در افراد سالخورده افزایش می‌یابد دانمارکی ها موبایلی ترین و ویبگرد ترین اروپا هستند فیسبوک دنس برسیس به نقل از تارنمای محلی کشورهای دانمارک و اسلوواکی بیشترین ترافیک اینترنتی از طریق موبایل را در اروپا دارند کمترین ترین صحب نیز در اختیار ملاوی با یک درصد است بر اساس گزارش تحلیلی مؤسسه جیموس پرترافیک ترین نقطه اینترنتی اروپا دامارک و اسلواکی بیشترین سهم تولید ترافیک در اینترنت را از طریق موبایل در بین کشورهای اروپایی دارند. هر کدام از این کشورها به ترتیب به سهم 35 و 25 درصد از کل ترافیک موجود جایگاه اول و دوم را به خود اختصاص دادن. خطر دیپورت مادر و دختر افغان از دامارک فیسبوک دنس برسیس به نقل از تانمای تا محلی یک زن افغان به همراه دختر 11 سالش یاسمه به علت در خطر بودن جانشان از افغانستان گریخته و پس از تحمل سختی فرابان خودشان را به کشور دامار گرسانده بودند. پس از تقاضای پناهندگی و رد تقاضای پناهندگی آنان توسط دولت دامارد اقامت بشر دوستان در دامار دریافت کردند اما بار دیگر دولت دامار تصمیم به دیپورت این خانواده از دامار گرفت یاسمین و مادرش باید چهار جانبی خاک داماک را ترک کنن و به کشور خود بازگردن اما در یک حرکت انسان دوستانه هم کلاسی های یاسمین با ساختن یک ویدیو تبلیغاتی بشر دوستانه از دولت داماک و سازمان امور خارجان درخواست کردند به این خانواده افخان یاسمین و مادرش اجازه اقامت در داماک بار دیگر داده شود و آخرین خبر این هفته داماک پیتر اشمایکل دروازه‌بان سابق تیم ملی دانمارک از همسرش جدا شد فیسبوک دنس پرسیز به نقل از تا نمای محلی فوتبالیست سرشناس پیتر اشمایکل دروازه‌بان سابق تیم ملی دانمارک و باشگاه منچستر یونایتد پس از 10 سال زندگی مشترک از همسرش طلاق گرفت پیتر اشمایکل و بنته پس از 31 سال زندگی مشترک هر کدام زندگی جداگانه ای را پیش در پیش خواهند گرفت این زوج یک دختر و یک پسر دارن پیتر اشمایکل در بازمانه نامدار دانمارکی در 18 نوامبر 1963 از پدری لهستانی و مادری دانمارکی در داماک به دنیا آمد. تو خاموش، آسون شدم فراموش، دختم دیگه شکست. یادمه که مردم اون شدی که رفتی من که زندگیم و پای تو گذاشتم از تو انتظار نداشتم شما صدای ما را از رادیو هلبورز شهر آخوز گوش میکنید شماره تلفن ما 27 است آدرس الکترنیکی ما رادیو هلبورز at hotmail.com هست آخرین دادای خبری رو شما میتونید در صفحات فیسبوک رادیو هلبورز صفحه فیسبوک دنسک پرسیسک تارنماه های ایران اینفو داد دیکو و همینطور ایران گولو بال داد اینفو شما میتونید پیگیری بکنید تا آخرین خبرهای ایران جهان در همه مسائل آقایی لازم رو پیدا بکنید بعد از شنیدن آهنگی توجه شما رو به گفتار روانشناسی توسط دکتر کتایون آهنگر توجه شما را جل میکنه Het is een soort van پدرزان به گفتاره روانشناسی این ساعت رادیو البارز خانم دکتر کتایون آهنگر روانشناس در مورد اعتماد به نفس و تقویت آن با شما گفتگو خواهد کرد به آگاهی کاربران صفحه فیسبوک رادیو البارز و همینطور شنوندگان رادیو البارز میرسونم اگر چنانچه پرسشی در رابطه با داده‌های روانشناسی دارید میتونید در صفحه فیسبوک بوک رادیو ال یا به وسیله ایمیل رادیو ال یا ایمیل خانم دکتر کتاین آهنگر مطرح کنید تا در هفتهای آینده به پرسشای مطرح شده خانم آه، آهنگر پاسخ بدن ایمیل رادیو ال بورز رادیو ال بورز آت دات کم ایمیل خانم دکتر کتاین آهنگر info یادآوری katayonahengar.com یاد میکنم که katayonahengar یک کلمه است info علامت ایمیل katayonahengar یک کلمه است نقطه کام چند لحظه این دیگر به اتفاق گوش میکنیم به گفتاره دکتر katayonahengar خوایه از درود و صبحه بنا به درخواستی که در ایمیل‌های شنوندگان عزیز داشتم در برنامه امروز در مورد اعتماد به نفس و تقویت اون با شما صحبت می‌کنم آیا اولین باری رو که برای استخدام قرار مصاحبه داشتید و یا می‌خواستید در مقابل حزار بسیاری سخنرانی کنید به خاطر دارید شاید هم وقتی قرار بود که کار جدی‌تری رو شروع کنید یا برای نخستین بار به ملاقات شخص مهمی برید گلوتون از طرز خوش شده و لرزه بر اندامتون افتاده بود از لحاظ روحی و روانی به هیچ وجه در شاید مصاحب نبودید و فکر می کردین مجبور هاشیه امن خود رو رها کنید و به همین خاطر به شدت احساس نامنی می کردید. از طرف دیگه می خواستید تمام مهارتهای خود رو نشون بدین و در این راه هر ریسکی رو بپذیرید. می دونستین که اگه موفق بشین مذایری بسیاری از آن شما خواهد بود. با این وجود عدم اعتماد به نفس، طرزها و تردیدهاتون هموار اعتماد به نفس در زندگی هر یک از ما نخش ضروری داره و بدون اون نمیتونیم حتی نخست این گام رو برای تلاش در جهت دستیابی به اهدافمون برسیم. اگه خودمون رو باور داشته باشیم به رقم اوامل دلسرد کننده و موانع موقتی که با انها مواجه میشیم همواره با شامت و انرژی به پیش میریم. براستی این اعتماد به نفس از کجا میاد؟ چطور میتوان اون رو باور کرد؟ در اینجا هفراه مهم رو برای بالا بردن اعتماد به نفس تو مدرح می کنم که اگر از اونها آگاه باشید میتونید نسبت به خود باوری تزد و ناپذیر و ایمانی را سخت داشته باشید. یکی از اونا آگاهیه آگاهی خودتون رو افسایش بدید. فراگیری معارتهای جدید در زمینهای کاری و شخصی اولین گام برای رسیدن به اعتماد به نفس بالا. زمینه های مهمی رو که برای موفقیت در اونها به اعتماد به نفس بیشتر نیاز داره بشناسید. سپس در این حوزه‌ها با گذروندن دوره‌های آموزشی گوناگون، مطالعه کتاب‌ها و حضور در فضای آموزشی دانش خودتون رو افتخایش بدید. شرکت در کلاس‌های مجازی و تبادل اطلاعات با گروه‌های همسن و سالتون می‌تونه براتون لذت بخش و آسان باشه. دوم موفقیت‌های کوچک خودتون رو دست کم نگیرید. علاوه بر اونچه که گفته شد، اعتماد به نفس ما از معافیت‌های کوچیکی سرچشمه می‌گیرد که روزانه به دست می‌آوریم و پول میشه برای اینکه دانش ما رو به مرحله عمل برسونه. شاید اونها هدف نهایی ما نباشه، اما هر یک در جای خود بسیار مهمه. حتی یک دلگرمی ساده از طرف همکارتون یا تعریف و تشکر از شما به خاطر کار مثبتی که انجام دادید می‌تونه اعتماد به نفستون را افزایش بده. سفون برای داشتن ایمان قوی تمرین کنید افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارن باور دارن که خالق این آلم برای زندگی هر یک از ما نخشهی داره اونها معتقدن اگه این طرح الهی رو در پیش بگیرن موفق خواهند شد بیشک برای رسیدن به هر هدفی باید درسیابی به اون رو باور داشت در افتدا به استدادهای خودتون ایمان راستخ داشته باشید این باور سازندهی ای شما رو در تعیین و رسیدن به هدفتون یاری میکنند چهارم همباره قاطعانه تصمیم بگیرید بیتردید هر یک از ما در زندگی با موانه و دلسردی روبرو روبرون میشیم گاه این نوعامیده ها طبیعیه اما گاهی اگر به اونها مانند وسیلهی برای یادگیری و رشته منوی خودمون بینگریم به خوبی در میابیم که این ناکامی و سرخوردگی پایان راه نیست. اگه به تواناییاتون ایمان بیارین، قاطعانه تصمیم گیری میکنید. اگه در راه رسیدن به هدفتون ثابت قدم باشید و اراده قوی داشته باشید، میتونید بر موانع قلبه کنید. اگه در دوشباری این مسیر به جای رها کردن اون همواره مسمم و هدفمند باشید، به خوبی میتونید با چالش‌ها ها روبرو بشید. پنجم از تجربیات مشاوران و متخصصان بهره بگیرید. در زمینه‌هایی که احساس می‌کنید به اعتماد به نفت بیشتری نیاز دارید، از افراد متخصص و با تجربه راهنمایی بخواهید. تمام کتاب‌ها، مقالات و سمینارهای مربوط به این موضوع نیز می‌تونه براتون مفید باشه. این مشاور کوانو نیز می‌تونه به شما کمک کنه تا بر اهدافتون تمرکز کنید و هم‌باوره خود رو در برابر اونها مسئول و پاسخگو بدونید. در زمد بیاد بسپایید که اعتماد به نفس، اعتماد به نفس بیشتری میاره. شیشام همواره خود رو در ذهنتون قوی و با اعتماد به نفس مجسم کنید. اگه خودتون رو اینگونه تصور کنید، به تدریج این رویا در زندگیتون رنگ واقعیت میگیره. از خود بپرسید اگه در محف... موقعیتهای خاص و موفقیت‌های خاص اعتماد به نفس لازم رو داشته باشم. تا چه اندازه احساس خوبی خواهید داشت و چه کارهایی رو خواهید کرد در ذهن خود ذهنتون خودتون رو ببینید که با شجاعت و اعتقادی خیرالناپذیر به کاری اقدام می‌کنید اگه اون تصویر ذهنی رو برای مدتی حفظ کنید خودتون رو مییابید که رویا رویاهاتون به حقیقت میپیونده هفتم انتظار موفقیت خود رو داشته باشید داشتن انتظارات مثبت همون ایمانه حال اگر در ذهنتون مجسم کنید، داشتن اعتماد به نفس تا چه اندازه لذت بخشه، طوری رفتار کنید که بویی این ویژگی مصبت رو دارید. در مسیر دستیابی به اهدافتون مشتاقانه و با اطمینان گام بردارید. حالا دیگه شما به گونه مطمئن و قاطعانه همه چیز رو میبینید و به خوبی میدونید به هر چی انتظار اون رو دارید خواهید رسید. پس اگه همواره از خودتون اعتماد به نفس رو انتظار داشته باشید بی تردید این گونه خواهید شد کمی به خودتون زمان بدید تا تا چند ماه آینده با استفاده از این اقدامات اعتماد به نفس خود رو افزایش بدید همینه کاغذی بردارید و در اون کارهایی رو یاد داشت کنین که قراره برای رسیدن به اهدافتون انجام بدید باید بدونید که هر یک از این اقدامات در مسیر رسیدن به خواسته رسی تفاوت مثبت و چشمی رو ایجاد می‌کنه و باعث میشه مصممانه و سریعتر به سوی رویاهاتون قدم بردارید. شما از همین امروز میتونید اعتماد به نفسی، تزلزل ناپذیری و روبه افزایش داشته باشید که در تمام مراحل زندگی وجودتون رو سرشار از موفقیت و شادی خواهد کرد. امیدوارم با ما همراه باشید تا در قالب مطالب مهم دیگه بتونم پاسخ سوال شما عزیزان رو خدمتتون عرض کنم. تا برنامه بعدی خدایی ها رو نگهداره جم. به مجله بیداشت و سلامت این ساعت رادیال باز جلب کنم. خوشبختی چیست؟ تحقیقات جدید نشون داده که شادی واقعی در روابط انسانی نهفته است. تحقیقات جدید حاکی از آن است که شادی واقعی در روابط انسانی نهفته است نه در سروت مادی دانشمندان اعلام کردن یک گروه از دوستان نزدیک خانواده مهمترین چیز برای داشتن شادی و خوشبختی هستند و چیزای مانند داشتن آیفون و رایانه سروتمند بودن، داشتن یک ماشین شیک، یک خانه بزرگ این میزان رضایت خاطر و خوشنودی را فراهم نمی کند روانشناسان دانشگاه لند در سوئد میگویند تصویر اجتماعی ما از آنچه که موجب شادی ما می شود بیشتر در مورد روابط ماست و کمتر در مورد داراییمان. کارشناسان مقالی در 2010 در روزنامه سوئدی چاب کردند که کلماتی را برای کلمه شادی و خوشبختی در این مقالات به کار بردند و بررسی کردند که یعنی مدعی هستن که به این شیوه تونستن به منبع شادی جمعی دست یابند. دکتر دانیلو گارسیا یکی از مجریان این پژوهش میگوید این روابط بین انسان هاست و هم اهمیت دارد نه وسایل مادی. از این نظری مطالعه با تحقیقات دیگر در زمینه شادی هم راستاست. این مطالعه پیش از یکونیم میلیون کلمه را بررسی کرده و نشان داده که کلماتی عبارتهایی مانند مادر بزرگ زمایر شخصی مانند تو، من، ما و آنها اغلب در مقالی که کلمات در مقالی که کلمات سویدی برای شادی و خوشبختی یافت می شده به کار رفته است محققان در یافتن کلماتی مانند آیفون، میلیون، گوگل هرگز با کلمات شادی و خوشبختی ظاهر نشدند دکتر گارسیا میگوید این بدام معنا نیست چیزهای مادی موجب خوشحالی و خوشبختی نمی‌شوند بلکه در همون محتوای کلمات برای شادی همراه نمی‌شوند این پژوهش بخشی از پروژه تحقیقاتی بزرگی است که چگونگی توصیف مردم از رویدادهای مثبت و منفی در زندگیشان را نشان می‌دهد به گفته گارسیا بیشتر مردم می‌دانند که پول را نمی تواند عشق و خوشبختی را خرید بیشتر مردم می دانید که با پول نمی توان عشق و خوشبختی را خرید پانوم ها این روزا کمی موازه باشید برای آرامش داشتن به این نکته ها توجه کنید لطفاً این رازها رو در مورد مردان بدونید سعی کنید مردان رو تحسین کنید میدونم با تصمیم هایی که میگیرن گیرن موافق نیستید اما تحکید میکنم که سعی کنید نیازهای مهم مهمه او را برطرف کنید جنسی و صداقت او را آنطوری که هست بپذیرید او را تغییر ندهید مردها مثل پسر بچه ها میمونن هیچ وقت بزرگ نمیشن. طوری با اونها رفتار نکنید. طوری با اونها رفتار کنید که به نظر بیاد که بی همتا هستند. وقتی قرار با او حرف بزنید ازش بپرسید در چه حال و است. اگر نیست اصرار نکنید. مردها گاهی به خلوت خودشون پناه میبرن. اجازه بدین خودشون از خلوت بیرون بیان. گاهی سرگردان و گیج هستن. به اونا نگ... نگویید که چیکار کنن. هرگز شوهرتونو با دیگران مقایسه نکنید، او کارش را دوست دارد، به آن نیاز دارد، سعی نکنید مسیر او را برگردانید، در کنید، او فوت... به فوتبال علاقه دارد، به تلویزیون نگاه میکند و خیلی هم دوست دارد، سعی کنید در بعضی مواقع شما پیش قدم شوید. نه او، سعی نکنید او را سوال پیچ کنی، سرزنش هرگز او عصبانی شود. آنچه بین تو میگذارند میگذارد محرمانه است، پس قرار نیست که دیگران از اون چیزی بدانند. وقتی درباره توقعات برایش میگویی نشان بده که به اندازه کافی او مفید نبود است. وقتی درباره توقعات برایش میگویی نشان میدهی که به اندازه کافی او مفید نبود است و میخواهی برایش کسب رو تکلیف کنی. تا زمانی که از تو درخواست نکرده، تو درخواست نکن. کارهایی نه کارهایی انجام نده که فقط خودت دوست داری به او اجازه بده در بعضی مواقع نگوید. به او اعتماد کن. احساس خودت رو نشون بده. پیام احساسی خودتو به او برسون. در موقع بحث و دعوا، یه چیز که یه چیز تبییز حرفایی نزن که بعد پشیمون بشوید. دوستری دوست دارد به تلویزیون نگاه کند تو دوست داری بری سینما هر کسی میتواند کار مورد علاقه خود را انجام دهد اگر خواسته و نیازی دارید با بگو مگو تمام نکنید او را در آغوش بگیرید او را در آغوش بگیرید درسته تو مادر او نیستی اما مرتا عادت کردن گاهی بچه مادرشان باشند هرگز فکر نکن او عیب دارد چون انسان های بی عیب, عیب و نقص نیستند او دوست تو قوی، توانمند، توانمند در مقابلش باشی او هرگه زنی نیازمند و وابسته را دوست ندارد هرگه سکوت را، سکوت او را مورد بازجوی قرار نده وقتی در خلوت است از او انتقاد نکن برایش تأصف نخور، او را بیمار را افسرده ندون او زن زندگی میخواهد نه ایرادگیر برایش غذای خوشمزه درست کن، با این کار او احساس عشق میکند اجازه بوده با دوستانش باشد با آنها به سفر بدود تو میتوانی ماننده او با دوستانت هم سفر کنی او را فراموش نکن وقتی مشکلی داری و به او نگویی او خودش حد میزند مشکلت چیز چرا همیشه باید او را باور کنی شغله گوته ما ون چشم میسیاره،ی به بخند خان بخنده همیشه، گوش گل را با میشه، به بخند خان بخنده همیشه، گوش گل را با میشه، مثل سایه دوست تو، یک کسی پیدا نمیشه، مثل سایه دوست تو، یک کسی پیدا نمیشه، اشر خنگ هاته، اشر خنگ هاته، اشر خنگ هاته، اشر خنگ هاته. ام بیشه در فدلو خلو کبوس هاته، ام بیشه در فدلو خلو کبوس چشمات تن, چه, تن چه میخند لبخات سر دل، اشر خنگ هاته geç müziği söylötük, hep gül, boğlan da hepşe, bolca gül haha, o misin gül, boğlan da hepşe, bolca gül haha, o misin mesela bir boş şeyde toplay hiç kimse peyi da bulmuyor mesela O schet het zo ietskies die peedome niet schet, met zijn is o که توچال گوش میدادید گروه توچال به رهبری مدیریت سعید والایی که امشب شب یلدا رو در مرکز شهر اهوس برگزار میکنه محل برگزاری کنسرت سعید والایی گروه توچال وال وال, گده... وال مارس گاده شماره یک 8000 هزار آهوسی ورودیش هم شهست هست ساعت هشت شب شروع میشه و شما میتونید شب یلده رو در کنار گروه موزیک توچال بگذارانید آدرسشو یک بار دیگه میگم مقابل موزیکوسد والد وال مارس گد شماره یک هشت هزار آهوسی ورودیش هم هشت 60 کران هست. قسمتی از موزیک توشالا که برنامه‌ی قبلی در شهر آهوز برگزار کردن برای شما پخش می‌کنه. <تصفيق> با یکی از نوازندگان گروه توچال آقای سیروس که از کپناک با این گروه همکاری دارن و امشبم برنامه خواهنداش در دفعه گذشته یک گفتگوی کوتایی رو با ایشون داشتیم که این گفتگوی رو برای شما پخش میکنم Siroos was hem. de oudste mannen in Noord-Sierra. Hij is een van de Noord-Sierra. Hij is een van de oudste mannen in Noord-Sierra. Hij is een van de maar ik heb het gevoel dat ik het heb gevoel Maman ik het heb gevoel dat ik het heb gevoel dat ik het heb het Guru gevoel dat ik کارهای مال دههیه در واقع دهه de و 50 کد مونرو 40 و 50 شمسی رو اون کارها رو به اضافه یه سری کارهای فولک موزیک کارهای فولک In ایرانی از سیمابینا مثلا این کارها رو من تا به شکل با سازهای ی دارماکی با تو همکاری میکنه چی شد که این دارماکی با شما راه میاد یا شما با این دارماکی راه میاد؟ فار در واقع گروه ما یک گروه دو نفره است که پایه و اساس این گروه ما دو نفر یعنی سعید و من این گروه رو پایه‌گذاری کردیم و این گروه هم در واقع دو نفره است ولی وقتی اگر احتیاج باشه جایی بخوایم بریم برنامه اجرا کنیم احتیاج به یک پرکاشنیست داشته باشیم ما خب اجاره میکنیم یا اشخاص موزیسینای حرفه‌ای رو برمی‌داریم میاریم با ما ساز بزنن ما اگر کار بزرگی باشه مثلا می‌تونیم بیسیس‌های دامارکی یا جازیس‌های دامارکی برد بذاریم بیاریم ما بزنن ولی گروه ما دو نفره است و اونها کارهای ایرانی رو خیلی راحت میتونن انجام بدن یعنی که ما امشب از این آقای که آقای Gais, we maken percussie mizanen, muzikanten, kipkar, het is een conservatiewe. de school van de Musiri, hier in de school, wordt hier gedreigd. Muziek, hier wordt gedreigd. Muziek, hier wordt gedreigd. Muziek, hier wordt gedreigd. Muziek, Nachtbezen is er een arrangement dat je moet doen, want je moet je bass, je said guitar bass, je hebt bass, je hebt een bass, je hebt een bass, je hebt een bass, je hebt een percussion. In de relatie met Tehran, zoveel keer, dacht ik dat het een oude Iran was. In feite zijn de meeste van 95%, in feite oude werkzaamheden. Ik zeg dat niet over de oude muziek die صدای سعید والایر رو میشنوید از گروه توچال امشب در مرکز شهر آهوس برنامه دارم ورودوشم 60 کرون هست ساعت 8 بدازور شروع میشه محل برگزاری این برنامه والد مارس گد شماره 1 8000 آهوسی است که آدرس ایرانی اگه بخوام به شما بدم ik heb mars gekregen, ik heb een In muziek gehad, ik heb een geweldige bus gehad, ik heb een geweldige bus gehad, ik heb een geweldige bus gehad, ik heb شایی از موزیک گروه تاچالو شنیدید که وامیتر گفته گفتگوی رو با یکی از برگزارکنندگان برنامه امشب قبلان گفته گویی که باشون داشتم پخش کردم اما یادآوری میکنم که برنامه امشب ساعت هشت شروع میشه ورودیش 6 کرون هست مرکز آهوز هست در محله والد مارس گده شماره یک هش ازار سی بله هموطنانه عزیز. قبل از اینکه که مختصر توضیح بدم درباره شام شب کریسمس خواهش میکنم که توجه کنید اگر شما قضای خوبی درست میکنید میتونید به صفحه فیسبوک من مراجعه کنید به نام آشپزخانه کوچک من در آرهوس میت لیل کوکن ای آرهوس شما میتونید به من سفارش قضای ایرانی اروپایی بدید برای هر مراسمی که دارید ده نفر به بالا باشه اگر در رستوران یا سوپرمارکت کار میکنید در سر دامار میتونید از بستبندی های غذا هم مخصوصا خورشت مختلف هم استفاده کنید سفارش شما با تلفن، با تاکسی هم تحویل میدم نیازی به ملاقات نیست. شما میتونید اکس های فیسبوک رو ببینید و با اون سفارش بدید اگر دور از آروسم هستید باید خودتون تشریف بیارید و تحویل بگیرید. قبلا از همه کسانی که به من سفارش قضا میدن تشکر میکنم. شماره تلفنم هست 60 73 77 99 این موبیلمه. تلفنم 86 75 15 و 99 موبیلم 60 73 77 99 86 75 15 99 تلفن خونمه مذبر میخوام 86, 75, 15, 95 بله هفته دیگه از قضاهایی که در جهان شب سال نو میخورن براتون صحبت میکنم اما میخوام براتون فقط کوتاه بگم که هر چیزی که شکم به اون رو به عنوان شب اید پر میکنیم فر نمیکنیم قاز، اردک، مرغابی، مرغ، جوجه، ماهی رو هر چی باشه اول اون خوب بشورید، روغن رو روغن رو با بروس روی تمام اون گوشت بمالید. در این روغن میتونید زعفرون یا پاپریکا هم بریزید. اما از روغن زیتون استفاده نکنید چرا که روغن زیتون زود سیاه میشه. نیم ساعت مونده از فر بیرون بیارید، روغن زیتون رو میتو... میتونید بمالید با زعفرون پاپریکا تا در مرحله آخر رنگش کاملا قرمز بشه بسیارم خوش رنگ میشه اگه میخواید سب درست کنید برای غروب نگهداری کنید اون رو دور کاغذ نون کاغذ هم که نون درست می‌کنیم نون پزی سفید بپیچید بعد دور کاغذ آلومیومی بگذارید اون رو تو پلاستیک نگهداری کنید که دوباره عصرونو گرم کنید موادی که اروپایی‌ها نازش استفاده می‌کنن سیب درختی مخصوصی به نام مل ابلا درشت زود پختی میشه آلو سیاه و پیاز پیاز رو کمی تفت میدید کمی دارچین می‌ریزید بسیار اندک دارچین می‌ریزید با سیب و آلو رو مخلوط می‌کنید چند دقیقه هم تفت میدید در قدیم یا در صونتی خودشون از هند بیا هند بیا یک زرش که درشتیه که در فروشگاه هم هست اونم توی این مواد تف میدن نمک و فلفل اما ما ایرانی ها با پیاز و اسفناج و انار دونه انار رو به انار مغز گردو نمک و فلفل درست میکنیم البته دو نوع نوع اولش پیازو کمی تفت میدیم بعد اسفناجو میریزیم بعد دونه انارو یا اناردونو مغز گردو نمک و فلفل اگر انار شما رو ناراحت میکنه میتونید آبشو بگیرید اما اگر آبشو میریزید کمی خیلی کوچولو رو به انارم بریزید اما شکنپوری که اصلا از مازندران اومده و شکنپورم معروفه پیاز و سبزی و مغز گردو و زرشک و کشمیشه پیازو تف بدین سبزی قرمه رو اگه قبلا سرخ کرده بودید باشید چه بهتر و نباید زیاد فقط سرخ کنید سبزی استفاده کنید که در قرمه سبزی استفاده میکنید بعدا سبزی رو که کمی ریختین توش زرشک کیشمیش کمی که سرخ شد مغز گردو به انار روبه انار دو قاشق رو سرپور ولی یک قاشق روبه گوجه سرپور دو قاشق رو به انار یک قاشق رو به گوجه. نمک کم بریزید رو به انار رو به گوجه نمک دارن. یه چیزی که در غذاهای ایرانی واقعا همیشه باید رعایت بشه، در مزه هم داره و حسی خوبی هم به آدم دست میده. یکی اینکه غذای ایرانی رو باید دست جمعی خورد. تازه و دومی که جا می‌افته. موقعی که مواد رو ریختی، تصمیم گرفتید که خاموش کنید، یعنی فکر به مرحله آخر رسیده‌، خالا خموشش نکنید شله رو پایین بیارید آخرین حد یه شله حد اقل یک ساعت تا جا بیافته اگر دیدید روغن بالا نیومده و جا نیفتاد بدون که روغن کمی ریختید نوشی جونتون باشه شب خوبی داشته باشید با غذاهای خوشمزه کوز اشتون شب و کوز اول تو رفتی، جلما. بعد مامان و بابا کشتب تبدیلی کنارت تو است. <مت> سخت شب کریسمس. مامان و بابا تبدیلی پیش من غفشانی شب کریسمس. فقط یه لحظه I remember جز من نمونده کسی تو اون اکس اکس قشنگه شب کریسمس اون شب تو بودی که نارم تو اکس اکس قشنگه شب کریسمس مامان و بابا تو بودی پیش من چقدر قشنگ شب کریسمس اون شب تو بودی Psyje, żeby se ma, bo to bude pi się ma, to شادی و شور و مهربانی است زمان همدلی و همزبانی است به هر جا مفلی گرم و سمیمی است که مهمانی در آن رسم قدیمی است ز خوردن خوردن این شام چله شود مهمان حسابی چاق و چله شمردم من ز چله تا به نوروز نمانده هیچ جز هشتاد و هشت هشتاد و نو روز شما همون چیزهایی رو که میبینید باور دارید، ادوین میگه. باورهای شما بیانگر منش و انسانیت شماست، بریان، ترسی. خود رو باور داشته باشید، شما پیش از آن که میاندیشید میدانید، بنجامین سیاک. دروغ بزرگ رو با صدای بلند بگویید، مدتی آن را تکرار کنید، دیریازود یا مردم آن را باور خواهند کرد. آنانی که ملت ها را آفریدند بر فرازشان ایمانی آویختند نیچه در قلمروی روی دانش اعتقاد ها و بیچونه چرا جایی ندارند چنان که چنان که با چیزی را باور نکنید نخواهید مرد هم هموتنان عزیز توجه کنید که به کودکان چیزهایی بیاموزید که در آینده در باورشان تحصیل نگذارد مثلا بی که میخواستم قابل توجهست بهتون بگم اینی که وقتی خونه رو ترک میکنید شبها این شبها موازه به این دوزدان باشید متأسفانه مخصوصا شبیه کریسمس بسیارم اتفاق میافته چراغ خونه رو روشن بذارید رادیو رو روشن بذارید و چیزای ایمنی رو رعایت کنید ای یزدان پاک هرچی در زندگی داریم با تلاش تلاشی که کردیم آن را به نسل خودمون هدیه می دهیم. آموختیم تا می توانیم باید به کودکان مه را بی آموزیم، اشق ببرزیم که این باعث شادی و آرامش ما می شود. برای همین ما با چشمان باز به طرف نور می رویم. نوری که در آن سل آزادی برای همه جهانیان باشد. درود می فرستیم به مردان بزرگ تاریخ که راه مهر و مهربانی و شادی را به ما نشان دادن، با رسیدن سال جدید شادی خود را با تو خنده خود را با اون سلامتی خود را با شما سهیم هستیم برای همه مردم جهان دعا میکنیم که بتوانند در حق داشتن یک زندگی انسانی مخصوصا کودکان و سالمندان تلاش کنند بیاییم قبول کنیم که احترام گذاشتن به باور کسی به معنی قبولان نیست اگر باور شما راهی برای دوست داشتن باشد دوست داشتن به هم نو باشد بدونید باور شما بسیار هم ارزنده است رادیو البرز شب عید و عید رو مسیر رو به هموطنان عزیز تبریک میگوید شب خوبی برایشان آرزومند است بیاییم دست در دست سرود آزادی و سازندگی بخونیم بخانی مهم نیست که مملکت ما یه خرابه باشد فقیر باشد آنچه مهم است در آن نقطه از کره زمین کشوری به نام ایران سرزمین اجداد ما هستش که ما به آن دلبستگی داریم و امیدوار هم هستیم تلاش و کوشش فراوان کردند اجداد ما تلاش و کوشش فراوان کردند ولی متاسفانه تلاش آنها تا این لحظه به نتیجهی نرسیده است امیدوار باشید به آینده امیدوار باشید یزدان بزرگ نگهوان همه شما باشد سپاسگازارم از این که تا این لحظه با ما همراه بودید امیدوارم که ایام تعطیلی خیلی خوبی را داشته باشید به خصوص این شب شب یلده دراسترین شب سال شب خوبی برای شما هم وطنان گرامی باشه تا فردا ساعت 8-30 دقیقه بانداد که میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود شما را به خدای خودتون میسپرم شاد و تندرست و پیروز باشید